حکایت یکی را پرسیدند از مستعربان بغداد ما تقول و فلمرد گفت لا خیر فیهم مادام اهدهم لطیفن یتخاشن فاذا خشونه یتلاتف، یعنی چندان که خوب و لطیف و نازکندام است درشتی کند و سختی چون سخت و درشت شد کنان که به کاری نیاید، تلطف کند و دوستی نماید، امردان گه که خوب و شیرین است، ترخ گفتار و توندخوی بود، چون بریش آمد و به لعنت شد، مرد و و میرجو بود،